اللهم على محمد وآل محمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عطيناك ربك إِنَّ عَاقِبَةَ الْأَمْرِ إِلَى رَبِّكَ خَصَّ وَمَنْ أَنْتَ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اوزو بالله من الشیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله جعلن جعلنا متمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و عمت المعصومین عرض سلام و ادب و افترام دارم خدمت شما بزرگواران بارون که در خدمتون هستم هم خدومند متعار رو شاکرم تسلیه دارزم کنم فرارسیدن ایام سودواری سید و سالار شهیدان و یاران فداکاریشون رو خدمت شما بزرگوارم امیدوارم که دست از این محرم بیرون بریم من پنج شب در خدمت شما بوزگاران خواهم بود و بیشتر جلساتم و تو فضای دانشگاهی حالا تو حیات هم جلسه داشتیم تا فرمودن که تو این محله و اینجا احساس نیاز هست و فلان ما شاعت هم بابت هم که پیش اوماد در شروع جلسه من اسخان ما رو یه مقدار که تا جمعیت جمع بشه خورده دیگه شروع کنید مطمئن من خودم نگاه همینجا یک نفرم باشه من سر ساعت بحثام شروع کنم. بخاطر تو کشورم اون آخر این بعد از اینجا بشکنه دیگه اجازیت ببینید صحبت کردن در مورد ابا عبدالله صحبت کردن در مورد امیرالمومنین صحبت کردن در مورد آقا زمان بدون درک مفهوم امامت ممکن نیست یعنی اصلا بنده معتقدم و اثبات میکنم با هر دین و هر ای که شما دست بگذارید اثبات میکنم که اصلا دعوای دنیا اصلا دعوای خلقه سر امامته و تمام ادیان دارن به زور یک جوری خودشون رو منتسب میکنن به این مقام و اینکه این مقام دست ماست خیلی اهمیت داره اگر این مسئله فهم بشه و درک بشه بسیاری از مشکلات حل میشه خب ما شیعه هستیم در خانواده هایی به دنیا آمدیم که هبه بوده با تربت دهانمون رو باز کردن از بچه که توی بزرگ شدیم یعنی شاید برای ما از همه حتی واجب تر باشه که این مفهوم درست بشنسیم یعنی اعتقاد دارم خیلی از شیعیان متاسفانه نمیدون اصلا یعنی چی حقیقت سال گذشته بود اشتباه نکنم در یکی از حیات تهران پنج شب در مورد امام شناسی صحبت کردن یعنی فقط موضوع امام بود تا اینجا بنا ندارم اون مباید تکرار بشه و اصلا بحثم ممکن اشتراکات داشته باشه اما است. از یک نگاه دیگر من پردازم و در این چهار شب آینده که در خدمت شما انشاءالله به شرط حیات خواهیم بود اینه که روی شخصیت هایی روی کربلا و ارتباطشون با مفهوم امامت و اینکه چجور امامت رو فهمیدن صحبت خواهم کرد. ببینید شرط هستی اینکه خداوند متعال فرمودن که ما شما رو خلق کردیم در قرآن هست شرط هستی قبول عبودیت بوده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اگر اینو عنایت بفرمایید و خوب حل میشه براتون بسیاری از شبهاتتون حل میشه. بسیاری از شبهاتی که امروز جوونا دارن خوب دفتر ما خیلی میان میرن. از کافر شما بگیرید تا انواع اقسام اقلیت ها میان بحث داریم مباحثه داریم الحمدلله افتخار می‌کنیم تا تو الان توی مؤسسه ما 242 نفر شیعه شدن. و اینا کسایی بودن که ما دنبالشی کردن کسی نبودیم ما. مسئله چیز دیگه داشتیم حالا اونا میومدن. حالا کسایی که تلفنی گفتن ماشیه شدیم اینا اصلا ما حساب نکردیم. یعنی بعد برامون اثبات بشه این مثلا. خیلی به این فکر می کردم که چرا مثلا یه جوونی گمراه میشه؟ چرا اصلا از اول به راه نمیاد؟ نگاه چند تا همه دعوا سر همین. اصلا دلیل خلقت فهمیده نمیشه. به پوچگرایی میرسه. نیلیست میشه میوسن برای شما رو خفف کرده که بعد بفرستتون جهنم اینکه خدا مثلا خفف کرده نبوز بالله آزار داره بفرست جهنم بعد عذابم کنه اصلا نخواستم از خلقتی که بخواد تهش این زندگی باشه و اون باشه و فلان ها قران اون که از قرآن استفاده میشه و از روایات اینی که برخلافه که خیلی فکر میکنن ما در خلقت کاملا مختار بودیم یعنی اصلا جبر نبوده یعنی خداوند متعال کل عرانچه که مخلوق شما اسمشو رو وقتی خلق فرمودن بهشون گفتن این هستیه این نعمت هستیه نظرتون چیه از نیست گفتن خیلی خوبه خداوند فرمود به مخلوقاتش که ای نداره خوبه قرار از این بهترم تازه بشه اون تو یه شرط داره شرطش اینه که شما تو مسیر درست باشید اینجوری نیستش که هر کار دلتون خاص بکنید یعنی تمام دعوا سر اون پذیرش اون مسیر است. مسیر سرات طریق تنها دعای واجبی که شما تو عمرتون انجام میدید اگه این دعای واجب رو انجام ندید اون دنیا خیرتون رو میگیرن احتناس سراط المستقیم خدای مریضا رو شفا بده نگفتید کسون دانه خیر شما رو نمیگیره که چرا این ر تنها واجب میان خیلی ما رو میگیرن دیگه اگه انجام ندیم. اهدن سراط المستقیم واجبه. چرا؟ چون تو نمازه. اگه کسی این دعا رو انجام نشوشید یعنی نماز نخونده. لند تنال و شفاعتنا من استخفه به سلاط. به کسی که نماز و سباکی بشماره نخونه که هیچی. سباکی بشماره نمیرس. در سر همین سراطه. سرات مستقیم. اصلا وقتی این پنجلسه پار سال ما میخواست بیارد بیرونیم بچه ها گفتن که اسمش چی بذارم گفتن بزیار سراتو مستاد همینه یه راه هم بیشتر ندارم آقا ما میگن ما روایت داریم توی فیلم, سری... فیلم مارمولک هم گفته نمیدونم به تعداد آدم راه هست رسیدن به خدا اینا میگیم بله یه راه بیشتر درسته حسابی پدر مادر دار تهران تاقوم نداره یه راه بیشتر نداره. منتام به تعداد آدما روش رسیدن هست یکی با 20 تا میره یکی با 40 تا میره یکی اونجا میزنه بغل جاده وای میسته نهار میخوره اون یکی نمیدونم میخواد با گاز بره یکی با بنزین میره یکی با ماشین شاسی بلند میره یکی پیاده میره دیگه اینا به تعداد آدما مدل رانندگی هست بله این اونه اشتباه نکن برایش مجبورم تو این سخنرانیم صد خیلی از جاده و رانندگی و اینا مثال بزنم راستش سر همینه خداوند فرمود ما خلقت الجن والانس الا بود. خب بعد در جای دیگه میفرماز اینو بزنید کنار هم دیگه میگه شرط خلقت شما ببینید روی جن و دست میذاره چرا بقیه چیز رو خلق نکرد خدا چرا اونا شعور ندارن چرا یسبح الله ما فالسماوات و ما فالعرض هر اون چه در زمین و آسمونه است اونا دارن تسبیح خدا میکنن یعنی این میزه داره تسبیح میگه من چرا نمیفهمم خورشید داره تسبیح خدا میکنه نمیفهمه گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و ما خاموش همه دارن و نجم و شجر رو جدا. شما دیدی سجدهشو به من نشون بده شجر یعنی درخت نجم یعنی بوته برخلاف گمان فکر کن نجم یعنی ستاره اینجا نجم یعنی بوته میگه درخت دا... گیاهانی که بوته اینو یعنی ساقه دارن تنه دارن درخت نه همه دارن سجده میکنن خوب به من نشون بده ببینم دوستا اننی رأیت احد اشراک او کبا و شمس و القمر لی ساجدین میگفت دیدم ماه و قمرا من سجده میکنم من به مفهوم باید رسید یه نکته تو قران هست که مرحوم علامه طباطبایی اشاره فرمودن که خیلی بحث عمیقیه و من جرئت نکردم تا الان تو هیچ کدام از سخنرونی ها ببین بپرزات یه اشاره کردم این که شلمات و الفاظ صورت ظاهری یک حقیقته اگر کسی به اون حقیقت برسه موحد میشه مثال بزنم چراغ 400 سال پیش یعنی چی وسیله ای که نفت میریخن توش قبل ترش روغن میریختن توش یه فتیله داشته سفالی هم بوده یک کاسه صفالی، یه فیتری میشدن بغلش، کشو بر رقم می‌کردن، روشا می‌کردن. گذشت چهارصد سال پیش نفت، 200 سال پیش فانوس اختراع شد مثلا. مصباحی داشته، یعنی لامپی داشته میذاشتن نور می‌داد. الان چراغ چی؟ چراغ تیره، چراغ قوه، چراغ لامپ. پس ببینید چراغ لفظ چراغ از یه مفهوم دیگه ای نشأت میگیره. اون چیه؟ اعطای نور یه موقع این نور با تنگستنه تولام یه موقع با فیتیل سختنه درست شد اون مفهوم و اون فحوار آدم بگیره سجده یعنی چی ها؟ یه موقع اینه یه موقع همین که درخت داره برگی میده و تو زات این یعنی داره سجده میکنه ها؟ خیلی داستان ها نمیفهمیم دیگه برای مرحوم علوم تباته میفهمیدن اگر کسی به مفهوم پشت سرینا برسه موهد میشه چون همین از یک حقیقت سرچشمه میگیرن در مورد بیبی بی حضرت زهرات تو قرآن با چه عنوانی یاد شده؟ قرآن من نور نیست شک داری؟ یه سوره داره اسم چی؟ نور یه آیه داره اسم نور نورون الا نورون الا نور چه شود چقدر تو اون آیه نور داریم باز خیلی جالبه تو اون آیه تمام سیزده معصومو خدا میگه نور یکیشونو نمیگه نور یه چیز دیگه میگه میگه چراغ عجب فرق نور و چیه؟ چراغ تولید کننده ی. نوره درست شد؟ چراخ تولید کنه یه چیزی هست این, این لامپی که مثلا بالا سر ماست این خودش نور رو تولید میکنه درسته؟ اما این دیوار ما به واسطه نور میبینیمش اما نور خودشه واسطه چی بوده؟ او بوده بخونی سوره نور آیه نورو همون آیه عجیب قریبی که همه مفسرین از تفسیرش آجز ماندند میگی که مثلا نورهی کمشکات اما آیه تام میگه که الله و نور و سماوات میگه این یعنی محمد سلام نداشت مثلا نورهی میگه یعنی علی دومین نور کمش کار یعنی فاطم او نور نیست. او تولید کننده نوره مولد نوره زهرا یعنی چی؟ درخشنده خب بدونید کابالیستا میگن ما زمانی به کسرت میرسیم که کتاب زوهر رو بخونیم کابالا چیه عرفان یهودیه دعوای مشرعیان الان روی کره زمین با این صهیونیستاس صهیونیستا عقیدهشون از کابالا میگن روی کره زمین دو تا عقیده بیشتر وجود نداره دو تا عقیده بقیه به یه نوعی به اینا نزدیک از اینا دورن یک تشیع اسماعیلی دو صهیونیست اینا دعوا واسه مدیریت دنیا. هم ما میگیم دنیا آخر از همه مال کیه؟ یا همه عالم بگیریم یا بر آلم پیزنیم <صیح> یا دنیا رو می‌گیریم یا همه دنیا رو می‌خوایم. <صیح> اونم دیگه همه حرف می‌زنه. میگه ما کثیر زمانی میشیم. چرا چون خدا به حضرت ابراهیم وعده دار از فرزندان تو امتی به وجود میارم و کسیر خواهید شد، کل زمین رو خواهید گرفت. اونها میگن مایم، ما, ما میگیم مایم. ما اونا میگن بنی اسرائیل ما میگیم بنی اسماعیل. قرآنم کسرت رو در فرزندان اسماعیل به کی نسبت میده؟ انا عطاینا کل کوثر میگه در این وجوده اونا میگن اگر میخوای کسیر بشی باید زوهر بخونیم اسم کتابشون زوهره اینا بحثایی که ده سال بعد پجوهشگره ما قرار مثلا تو کشورم آرمانم شروع کنه درمو صحبت کردم. من جد میگم از ما گفتن شما نشدید اون کابالا میخواد چثیر بشه زمینو بگیره میگی به واسطه زهر شیعه میگه نه ما میگیریم کسرت مال ماست به واسطه زهرا عجب بعد میفرماد فیها در اون مصباح ونل مصباح دو تا مصباح مصباح چیه؟ جالبه. اون چراغ دونه. یعنی این فتیله که نور میده میخوره به اون لامپ دور، چیکار میکنه نورو؟ زیبا میکنه و جلوه میده. میگه به واسطه اون دو تا دوبارم مصباح دو لحظه لفظ مصباحو استفاده میکنه برای اینکه دوزاری بهتر بیفته، یه روایت میخونم. ان حسین دو تا حسن با میشن چی؟ تو عربی حسنین حسین میدونید یعنی چی به عربی فؤل یعنی فعل کوچک حسن رو میگن چی حسین حسنین یعنی هر دوتا حسنن یکی حسن اون یکی حسن کوچک میشه حسین در زبان عربی این قواعد زبان عربی میگه دو تا مصباح. بعد اشاره میکنه میگه که باد میخواد اون جالب وحثش سر چراغه رو شهر میده میفهمه شب شا... دوری میگه این ستاره درخشنده است یو دو من شجرت مبارکه شجره مبارکه تو قرآن بری ببین مالکیه مالکیه حضرت ابراهیم میگه این همون قولیه که در مورد ابراهیم داده ایم. ولم تمسیس هون نار من قرآن جلوم نیستش اگر یه اعی او اینو ای گفتم اگر من ازخوا هم هم آیه شدارم اشاره میکنم میتونید رجوع بفهمه میگه آتیش هم اینو نمی سوزنه. نوری نیست که به آتیش ربط داشته باشه برای چی؟ برای که یکی از مصداغ های نور تو ذهن ما چیه؟ نوری که از آتیش منجبت میشه بعد عرض کردم میگه مفهوم نور رو بگیر روشنایی جایی که نور نباشه چیه؟ ظلمات یخرجهم من النور الی الظلمات میگه که اینا نباشن زلماته عکسش چیه من از ظلمات الی النور میگه این نور از اون نورای آتیشا نیستا اشتباه نکنید با مس نار و لمس نار ارتباط نداره بریم این شجره رو یه نگاه کنیم حضرت ابراهیم اندختن تو آتیش چی شد اومده این طرف آتش به خانه زهرا زدند جالب در مورد بیبی همه چی نقل شده الا سوختن خودش میان چادر آتش گرفت اما نه هیچ جا نگفتن که سوختگی بر بدن باشه آقا امام صادق در زمان ظاهرا منصور اشتباره. اگه از همین خلفای عباسی منصور بود بشه خونه حضرت آتش زدند حضرت جلو چه این ملعونا تو آتیش را میرفت همین آیه رو میخوا تو آتیش را رفت گفت بابا آتیش بر ما حرامه نور یه معجزه قرآنی هم میگم قشنگه خدا هر جا از ماه اسم برده میگه نور دقت کردید؟ و مشتقات نور میگه میگه منیر و القمر و نورو و شمسو بگید سراج میگه اون چراغه این نوره یعنی چی میگه این نور مال خودش نی از چیه از چراغ است این شاهکار نجوم قرانه برید بخونید و شمسو زیا میگه خورشید چیه زیا یعنی اونی که زو میده یعنی مولد نور رو میگن زو مولد نور نوری که از نوری که از خود مولد اومده بیرون شمس چراغ نور دهنده است اما ماه نور اونو داره به شما منعکس می‌کنه در زمان این حرف زده یکی که برعکس بین مردم چی شایع بود که می‌گفتن ماه چراغ آسمان است دقیقاً ماه به چراغ می‌شناختن قرآنی نه نو ماه نو مال خودش نه ااریه است قرض برو ببین شم... مال شمسه شاهکار قرآن خب بعد بچه میگه کافر بمونه چهار تا این دلایل براش بیار 1400 سال پیش یک پیامبری در میان عرب جوهلی آمده درس نخوانده آنچه بهش وح در اود گفت. تا دلتون از نجوم بیایید از زمین شناسی پزشکی هرچی بگی توصینم دارم. یعنی واسطه خلقت اونطور که قرآن می‌فرماد ای بی روایت هم داریم تایید میکنم نه لولاک لما خلق تو لفلاک اگر تو نمی بودی <تصفيق> که ما افلاک رو نمی آفرین این بعد تو آخر میگه چی لولا فاطمه اگر فاطمه نمی بود هیچ کدوم تو نمی آفرین واسطه فیض و در آفرینش و دمید شدن نور در اصلی زهراست آقا یعنی چی؟ یعنی مقام از از رسول اللو بردتار نه میگه وسیله خلقت درست ببین، ببینید قاطی اون مردم چی داشته که بینشون زندگی می اینا چه کردن؟ چه کردن؟ ادامه بدن گفت ما خلقتل جن و الانس الا لیا بودون من شرطم اینه که عبودیت کنی گفتن که قبوله همه گفتن اله سو براب بکن بالو بله همه گفتن بالو بلا جالب قرامی که یه نفرم نگفت نه <تصفيق> همه گفتن آره چرا؟ چون هستی رو دیدن یه مثالی میزن مثال شاهکار این مثال این مثال قشنگی بعضی از مثال خوب مثله اونجا به نظر شما چند درصد مردایی که میرن سربازی با عشق میرن خدمت خود عشق خودمونی میگو. بریم خدمت کنیم دو سال با اصلا مثلا جین نمیزنن و خنده ها تا چه خبریم درصد کمی هن واقعا. خدا فرمود این هستی رو میخوان گفتن بله پای... چی میخوای؟ خارجیش باید بله زن میخوایی بگیری بله سرکار میخوایی بگیری بله شرطش باید خدمت هستیری میخوایید بله لاله یعبودون عبودیت بچی مجبوره بله بتونه در میره اما بتونه جین میزنه بتونه از زیر سیم خاردار سر پست میخوابه هزار دنگ و فنگ داره که اله هم دلو بیم این طرف الَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بَنِي آدَمَ لا تعبد مگه ما با شما عهد بودم که صدا نرید ان شرط ما عبودیت مگه نبود و سریع ان رو معنی می‌کنه معنی می‌فهمه کازا سراتون مستقيم یعنی عبودیت که شرط تأسیسیه تو راه باشید ساعت مثلا 6 صبح پادگان اینجوری که چفشت رو مثلا پوتیناتو واکس بزنی اینجوری احترام بزنی همه کاری که سربازت بکنن خیلی هم مند و خیلی هم چیه؟ قانون مند اگرم نمیخواد نه یا. دوباره میبرم به عدم دردم نداره خدا میگه یکیشون نگفتنن همه گفتن بله با این بلرم بهتون بگم اما فقط برای موجودات مختار نیست سنگه کوه، همه گفتن بله چون از آیات قردان برداشت برگه این اینو میفهمن اینا شعور دارن و در راه حال تسبیح خودان اما شاهکارش میچه میفرماد اینا تسبیح میگن توان از سر اطاعت او کراحت عجب بعضیشون هم هستن سر چی؟ کراحت موجودات شدن دو دسته یک دسته موجودات مختار جن و انس یک دسته موجودات چی؟ مجبور اونایی که مجبور شدن، اونی که یعنی اینجوری کردن. بله. زدال بود دیگه پذیرش این شرط. بعضی گفتن بله. با عشق گفتن بله. ما روایت داریم که در همون روز شما تعیین کردید کجا به دنیا بیاید، تو چه مذهبی به دنیا بیاید، تو چه زمانی به دنیا بیاید، ننه باباتون کی باشه، ننه بابای کی باشید. میگه ای چی شد من تو ژاپن به دنیا اومدم اینا تو ایران به دنیا اومدن اینا رو کجا بدن میگه همه رو خودتون انتخاب کنید جالبه تو همون روایت علاست است از آیه علاست میگه از پشت پدرانتان شما رو بیرون کشیدین یعنی کاملا نسبتون مشخص شد من خودمون تعیین کردیم چی دیدیم اونجا آخه چرا یادمون نیست دقیقا نباید یادت باشه چرا؟ چرا یادت بشه دوباره نفاق پیش میکنی. چون اونجا یه بار نفاق پیشه؟ کردن بعضی‌ها دیگه درسته؟ دوباره نفاق میشه. دوباره فین بازی میکنی. بله، نه خیلی خوبه، یادمونه دیگه. اینی که کسی که نشون میده، همچین آدم بشه که شک نکنی. آقا ابوالفضل چیکار کرد؟ اول گفت برید بعد بهشت نشون داد. از بین دو انگش. چرا قبلش نشون میده چی بود؟ هیچ اونجا بیرون شک نکن. یعنی اول خالص شدن غربال شدن بعد شیطون چی میگه؟ میگه من پدر همه این بنداتو در میارم الا عبادو کم هم من همون مخلصیم. قیلی اونایی که غربال شدن خالص شدن مخلص با مخلص وقت دارید دیگه مخلص یعنی خالص شده مفعل دعوا سر سرات مستقیم چقدر جالب تو نمازن همه میگیم اهدن سرات مستقیم دعای واجد خیلی جالبه ها چقدر این صراط مستقیم حالا میشناسین داستان سره اینه بعد یه روایت میخونم آقا امیرالمومنین انا صراط المستقیم تمام شده آقا امام صادق والله نحن صراط المستقیم ما این صدا حضرت عیسی انا صراط المستقیم انجیل بخون حضرت عیسیون که صراط مستقیم منه راست میگه تو زمان حضرت عیسی تابلوین اثران داریم میبینیم سمت مثلا واسه اون یه جایی بگم پرپی چخم چالوس صراط مستقیم هم همینه یعنی باید بری پر تابلوه خروجی داره همینطور. درسته؟ سر این دراهی اون موقع تابلوی درست که بوده؟ ایسف نوری هم فریسی ها خاخام فریسی ها گفتن نه این طرف بابا منم راه درست بیاید این طرفی مردم چند دسته شدن؟ چهار دست خب اول بذارم مجبور و مختار بگیم اونایی که مجبور بودند اون نهی که تو دلشون گفتن. اون بلایی از سر نفاقی که علنی گفتن شد ذاتشون. به خاطر هم قرآن خوده دید چقدر خوک فوش میده؟ با با خوک چی دن خود دنید؟ خود خوده. میشه می همه روایت رو بارده میترس رو بگه. اینقدر متاسفانه فضا بد شده. ما روایت داریم توی حیوانات اونی که اولین بغض رو نسبت به ولایت علی ابن عبی طالب گرف خوک. آقای قرآن چی در مورد خوک؟ میگه گوشت خوک رج داره گوشت خوک رج داره از اون در مورد قرآن احلیبه چی میگه؟ اینما یوریدو لاحلیوز هبان رج ریجز میگه دقیقا اون چیزی که شما احلیبه ندارید خوک داره ریجز یعنی پلیدی باز ظاهر پلیدی اما حقیقت پلیدی یعنی چی؟ یعنی نپذیرفتن سرات حق تو روایت آمده در مورد پرندگان کدوم بوده، همینجوری هست که وجود کنید. خب، مورد بحثمون نیست. فضا اگه باز بشه، جمع کردنش با کلمون کاتبه. یه همچین آخه تجربه‌ش داشتم. جایی گفتم دیگه این چی، اون چی، همینجوری میگم. هم اما دو سه میگم. مثلا توی سنگ‌ها میگن عقیق از همه زودتر پذیرفت. بعد فیروزه بود. توی املاح نمک. گندم، جو، خرما، انگیر، زیتون، برنج بعد شما میگه که یه شیعه باید انگشتر عقیق به دست راست کنه. قضاشو با نمک شروع کنه و با نمک تموم کنه. اینا ارتبا این ربطش نمیفهمه. چون ربط ظاهری رو ان نور یعنی که چراغ نفت این رو میفهمه. و خدا باید به اون بفهمانه بابا این نور اون نمی آتیش بگیره ها. بعد برید یه نگاهی بکنید. آدمایی که از این فضایی ولایت اهل به فاصله می گیرن خیلی جالب تغذیشن آرمانم تغییر کن یعنی تغذیه بر میزان پذیرش این مسائل اثر دارن از ما گفت موجودات مجبور شد ذاتشون موجودات مختار باید لو بره چرا چه اختیار داره عرفتی چی شد موجود مختار باید لو بره یعنی الکی میام ایوار هاشا بلنده میمونم که گفتم چه بده ببین شاگرد بده معلم تشخیص میده این گور به گور شده میفته آخر ته اما فرض کنید معلمش دو بده چیکار میکنه عالم اتوماتیک با تیش میکشه آ از من امتحان نگرفته فلان دانشجو همینجوری 20 بهش میدی میگن 20 گرفتیم وقتی یه خور نمره بده میگه داد یعنی فعلا اینجوری استفاده میکنن یه همین جوریه میدونه معلمان باش امتحان میگیرم تا چی؟ به خودت هم چی بشه؟ اثبات بشه تو لیاقت ورود به این مرحله رو نداشتی؟ تو لیاقت ورود به هستی رو نداشتی؟ نفاق بیشه کردی؟ نامردی کردی؟ بله و بگید از قدیم گفتن بلا؟ چناش باید امتحانه بیا برید پر قرآن پر بلا بلاه و ازبتلا ابراهیم ابراهیم هم ما به بلا آزمودیمش خب حالا مردم چی شدن خدا چه جوری رانندگی کنیم بحثه کدوم وری بریم یک بعد چه جوری تو جاده چگاه کنیم یکی مسیر رو می‌شناسه اصلا بعد برسیم تو چالوس تابلوها هم بلدی یکی دیگه چه رانندگی کنم زنجیر چرخ ببندم با 20 تا صد 120 تا برم این قوانینم برای قوانین شد دین قوانین راهنمایی رانندگی شد همین دین مسیرم هم مشخصه خیلی مثال خوبیه فکر میکنم قشنگ روشن میکنه همه چیزو آدم شدن چهار دست یک مسیر درست رانندگی هم درست یعنی قشنگ میدونه سمت برسمت چالوز تهران را میفته اینجا رو برد اینجا برم الان هشت تا کم کنم اینجا پیش خطر در گردش به راست قیل قشنگ رانندگی میکنه اصولی میرس اینا خوش به حالشه اینا مؤمنین هم مؤمنین مرحله دو. مسیر رو نادرست انتخاب کرده اما رانندگیش خوبه. درست رعایت میکنه. به جنگه مثل هم تو چاله سنه قشنگ قوانین رو را... رعایت را... میکنه. راه نما میزنه. من بسته. اما یه نکته دقت میکنید. هی داره از هدف. بگید. دور میشه. دو قرون. بگید. نمیه مثال ربایی بذاره. چیتونه گور به گور شده؟ ما به خدا گفت خدایا. روایت داریم. برای در تفسیر آیه است. ما خدایا. بیخیال این سجده دبیستانیهی ای بشو. همیه. سجده. قول میدم یه سجده برات بکنم. عالم و آدم تعریف کنم. آقا میران نون میفرما شیش هزار سال عبادت کرد 4000 هزار سالش واقع یه سجده بود. بعد حضرت میفرماد نمیدانیم از سال‌های دنیاوی بود یا آن طرفی. ستی میگه دیگه می 50000 سال یه روز یعنی او خدا میگفتش که خدا بریش جواب ده انما انا اوریدن جایی دیگه هم گفت انما انا اورید ان اعبد او من حیث اورید لا من حیث ترید من دوست دارم عبادتش کنم اونطوری که دوست اونجوری که من میخوام نمیتونه تو میخوای یعنی اصلا یه نفر میگه شما ازاد میخات که این کار بر من انجام میدی نه تو نمیفهمی این درسته بابا من میخوام اینجوری کاربرام انجام بدی شیطون چه جالب تو میگم شیطون تو توحید خدا شک داره؟ جواب مطلقا در مورد قیامت شک داره بگید مطلقاً خودش میگه الایام اسون چقدر جالب تو چیزم قبول داره نبوتم قبول داره اولیای دینم میشناسه برای چی برای که میگه یه سری از بنداد هستن دست منم میشونه میرسه پیامبرم میشناسه چقدر جالب شیطان اصول دین رو قبول دارد توحید نبوت معاد گیر شیطان سر دو دوتاست یک قائل برای این از خدای تو عادل نبودی دو من اینها را قبول ندارم چقدر عجیب در تشیع ما دقیقا همین دوتا را آوردیم جز اصوله بگید خیلی جالبانه آقا تو صدی خوب عبودیت کن خوب رانندگی کن خودم میگم من اینو نمیخوام باید و هی داره دور میشی برعکس. داری دور میشی. اینا چیان؟ اینا تو قران راهشونو گم کردن. خوب بلدان رانندگی بلدن اما راهو گم کردن گم راه عبارت عربیش بگید. خدا پدرت عمر بیاموزه. چی میگی اهتدنا الصراط؟ صراط الذين انعمت انعمت عليهم انعمت عليهم یعنی چی؟ الیوم اكملت علیکم نعمتي چه روزیه؟ روز غلیب صراط انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین این ظالین اینا بریم دسته سوم هم مسیر رو نادرست انتخاب کرده هم رانندگیش بده این دیگه چی اوله 180 تو داره تو جاده میره بعد کدومری هم داره میره میرسه سمت گفسا یه عوضاش خیلی خرابه درسته داره دور میشه بادم داره دور میشه هر لحظه ممکنه چی به درک واسطه شه بهم میره تو جاده اینجایی که 180 تو داره گاز میره اصلا نه زنجیره چرخید لاستیکاش ساوه هیچ حالیشی معاینه فنیات تعتیر دارم چی میرسه خودش اینا کیا اینا مغذوب علیه من غذب میکنه خدا برای اینا خدا ادادشون برسیم یه دسته دیگه موند مسیر رو بلده بگی بعد رانندگی میکن سرمونی میدوزیم پایین انشالله که ماها نباشیم اصلا چی شد ماهاییم مسیر رو میدونیم میگه مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل, دل، دل دل، بزن دل به فردا، آه. به دریا، آه. بزن دل به دریا، خیلی قشن خونده. این شعر، چیزه اصولی عجیب قریبی کیوشه. این خدا کنه که ما مقابل اونیش بشه، این رانه درست کنیم. خب، این برمیگرم، برمیگرم یه فلاشپک میزنم به قبل، میام حلش میکنم ماجره رو، که چی شد. اونایی که مختار بودن چی شدن؟ اینا. علاقی. یه ادعیشون واقعاً ته دلشونام قبول دارن یدشون ته دلشون قبول ندارن خدا گفت من یه کاری میکنم لو میره که قبول نشده قبول نشده یه بازی درست میکنم ابتلا جالبه اولین کسی که لو میره چیه؟ شیطونه نگاه کنید اولین کسی که بغض پیدا کرد نسبت به خدمت سربازی شیطان نبوده اشتباه نکنید اولین کس شیطان نبود شیطان اولین کسی که لو میره و کی بوده؟ نمیتون بگیم در دور بگیم بعد جلسات هر چی خواست بگم روایتش همشوش بگم خب؟ بله خب همینه به خاطر همینه خدا خیلی قشنگ میگه میگه کانمین الکافرین این کافر کافرها بود الان لو رفت چرا به آدم سجده نکرد؟ با حضرت آدم اصلا کاری نداشت با اون چهاردهتا تا کار داشت اون چهاردهتا اتا غرهکی به دنیا بیان ملکی زمینی غرهکی به دنیا بیان از آدم او به خلیفت الله سجده نکرد نه به آدم چون خود حضرت آدم قرار میشه خلیفت الله ترک اولا کرده بعد توبه کنه بشه خلیفت الله میگه ثم بعد اینکه تازه توبه حضرت آدم پذیرفت خدا گفت ثم مجتبى حالا تازه شش مال خودم شد این قبلش نبودی خوب بدونین حضرت آدم مقامش بعد از توبه کردن ترک اولای که انجام داد اصطلاحاً بذار بگیم تو مطلب جا افت اشتباهی که انجام داد و توبه کرد مقامش بالاتر است از زمانی که هنوز اون اشتباهی انجام نداده بود گویا اینجوری میگه میگه ثم مجتبى بعد مصطفی میشه خدا انتخابش میکنه چرا چون درس گرفت مسیر ببین خدا اومد اینا چهجوری آفرید فلکسیبل آفرید یعنی آپشنشون خدا گذاشته تو قابلیت تغییر بدی میتونی بشی اولای که کلان عام بلهم ازل میتونی بری تا بالا حالا یه سوال برای بد شدن برای بد برای خوب شدن خیلی خیلی خوب شدن من کجا بفهمم چهجوری بعد خوب بشه یه چیزی بعد باشه، یه شاغولی بعد باشه، یه خط‌کشی بعد باشه، یه متری بعد باشه دیگه. مبنا چیه؟ شاخصیه، با چه مبنای می‌سنجی؟ خودت گفت بر مبنای 14. یعنی شاخص شدن کی؟ آنها. آیا یه سوال؟ اونها باید ایراد داشته باشن؟ نه. اگر هر نوع ایرادی داشته باشن، این اراده برای پایینیا چی میشه؟ توجیه پذیر. به هیچ وجه اراده داشته باشن، بی‌نسبه 20 بیست باشند. نکته دو. باید درسی یافتنی باشن یا نباشن. یعنی بتونه قشن بهشون برسی. آره یا نه. شما اگه به چیز بتونه برسی بعدش چه اتفاق میفته. میتونه ازش رد چی؟ نباید بهتون برسی. میتونه بی نهایتبار بهش نزدیک بشه اما هیچگاه او بگیر. نمیشه. بکشیم خودمونو کانالکون فی رسول الله عصبتون حسن اسبه خوبی خطکش بهتره خطکش اغا رسول الله اما بکشیم خودمون هیچگاه حضرت ما. یعنی من حضرت مثلا نعوذ بالله من حضرت رسول با اینا زحمت کشیدم بید. عمره حضرت عباس به اسمت اکتسابی رسیده در صحبت خواهم کرد حالا نسبت اینها رو خواهم سنجیدین بزرگان کربلا برخیشون کار دارم با این سرات مستقیم خواهم سنجید خودتون خواهید دید چقد چقد شیشتونگه ما ده چقد جور همه چیش. مثلا پازل همه چی از هر جهت نگاه میکنی درستن این بحثی که خدمتون ارائه دادم اینه روایی نگاه میکنی جور در میاد قرآنی نگاه میکنی چه نگاه میکنی جور در میاد اینکه جوره نباید بهش برسی چون برسی ازش رد میشی میتونی خیلی خیلی بهش شبیه شی حضرت ابراهیم تازه زرتون 99 سالگی خیلی به اون شبیه شد حضر... خودم خدام فرمود انی جاهل کل ناس اماما میگه بعد ذب طلا ابراهیم بعد از اینکه از مودیمش زیارت جامعه کبیره خداوند میفرما شما اهل بیت حضرت امام هادی میفرما شما یعنی اهل بیت رو دارن ترسیم میفرما دیگه شما اهل بیت وسیله ابتلایید خطکش شماهایی با شماها میسنجه خدا این 1995 این 1999ه برمن چقدر ببین یعنی این طرف امیرالمومنین میذارن توی کفه‌ی ترازو آدم میذارن اون طرف هر چقدر این شواهد بیشتر باشه جاد بهتره نزدیکترین نزدیکترین بعد میان قصیم و نار ول جن یعنی چه یعنی امید بازه چرا که امیرالمؤمن مهم میشه به خاطر که تو آقا رسول الله رو خیلی تو جاده اومدن تو اون تاپلو بود که خراب شد که و جالب بدونید تقریبا قریب به اتفاق امت اسلامی رفتن جاده خاک برادران اهل سنتمون حدیثی دارن در صحیح بخاری که دیگه کتاب عجیب قریبی دیگه در حد قرآن قبولش دارن. برخی از فوقه هاشون میگن اگر کسی به صحیح بخاری شک کنه، کافره. زنش برش حرام میشه. شیعه همچین کتابی نداره. هر کتاب شما بگیم یا به هار و اصول کافی می. چی گفته بررسیش میکنیم. صحیح بخاری میگن آیه جناب بخاری اومده کتاب صحیح جمعه تو اونجا حضرت رسول میفرماد اون دنیا سر حوض کوسر اصلا حدیث حوض مروفه کوسر ایستادم از رو گروه گروه میارن سمت من میگه همین طور دارم میارن سمت من فرشته میان اینا را میچرخونن همه را میرزن تو آتش میگم کجا میبرید اینا رو؟ میگن ال نار میگم چرا این نمیدونی بعد از تو چه کرد کتاب شیعه نیست دار. میگم پس چی؟ میگه پرشت هم الله حضرت رسول الله اللہ حمله نم. میگه به تعداد انگشتای دست فقط موندن از صحابه من و دقیقه هم همین شد چار پنج نفر حالا فهمید همه دعوه سر علیه و دراهی علی بن ابی طالبه من نجف میرم میگم جلو گمه داری میگم همه دعوه سر تو بود. همه دعوه سر تو مئیار تویی، میزان تویی، حضرت زهرا بهانه علی بود، آقا عبا عبدالله بحانه علی بود، و بیشرفات و بزر آشروت چی می گفتن؟ بغزن، مئرهی بشید، انس راه توی ها حضرت فرمان، بریم اون دقت کنیم کانه بود از کاف برخم میگن کانه یعنی سارا یعنی شد یه مثال هم میارم قرآنی میگن مثلا پسر نوح میگه کانه من المغرقین بود از قبل شده یعنی غرق شد برعکس ما میگه پسر نوح هم از غرق شده بود از قبل وگرنه پدرش هم مسخره میکرد میگفتن آی وسط این بیابون آب کو آب آب اومد چه نفس سوارشی نه مرض داشت از قبل غرق شده بود غرق شدن یعنی چی ببین مفهوم چیه خدا شکر جلسه پربرکتی میشه من خیلی سخنرانی رفتم ها رکورددار سخنرانی کشورم به تو ها بزنید خب یه رکوردی هم زدم مثل گل زدن علیدایی هیچ کی دیگه نمیتونه بزنید. چون تیم مالدیو گیر نمیاد خب من دارم تشخیص میدم جلسه پربرکتی یعنی همه چی دو, دو تا چهار تا خوب داره پیش میاد ان الله. کان منل کافرین خودت چرا نگفتی کان کافر حالا که اینم این آقا این که میان یعنی شد کافر شد چرا میگه کافرین یعنی کسای دیگه هم کافر بگی بودن این یکی از اوناست لورف بقیه هم قرار لو برن رو همین زمین تو همین زمین دو دسته میشن اونایی که اونجا با عشق گفتن بله وقتی 14 نفر داد گفتن واقعا زیبان چرا که نه داشتم کم بود اینا که گفتن بله با اش. اینا این دنیا خانواده خاص بگن اما در عمل باید رانندگی خوب بکنن مگر می شود تو شیعه علی باشی و پشت سر علی ابن عبی طالب راه بروی و همچون او رانندگی کنی اما نماز نخانی عرق بخوری مردم را ازیت کنی دروغ بگویی غیبت بکنی تهمت بزنی بدگمان باشی یه میشه علی ابن نمیتالی بوده نه یعنی هیچ چیه تو رانندگی رانندگی علی شبیه نیست شیعه یعنی چی در عربی مشایعه در زبان عربی کسی که تو زمین شخزده را میره جلو میره کسی که پشت سرش میاد میخواد کمتر خراب بکنه جاره چکا میکنه میگم مشایعه شیعه یعنی شیعه علی یعنی چی؟ خلیفه دوم میگه دنبال ابوزر میگشتم گفتم دنبال سلمان میگشتن و ابوزر گفتم سلمان نید گفت چرا با علی رفتم تو نخلستان من نگاه چرا اون قریب تو زمان قدیم سری جاپاها رو نگاه میکردن که کدوم سمت رفتن اینا. نگاه کردم یه جواب گفتم ابوزرم که معروف راسگویی و صدیقه و فلان مطمئنا گفت میگه رفتم دویدم تونتون که ریستبونا دیدم سلمان داره پشت سر علی را میره علی که جاپا میذاره سمین چه شیشتون پاش میذاره جاپا چی کار یه رفتم چیکار داری میکنی این ادوات ورا چیه آبرو دیگه تو برش گفت لاوت علی تو این همه زمین پاشو اینجا میزنه لاوت یه چیزی میدونه لاوت یه چیزی میدونه دیگه من نمیدونم من نمیدونم آقا یه من جلو ماشین جلو میبینم میم؟ رهنما زد فلاشر زد نه بعد حتما من خودم ببینم تو تصادف میکنید دیگه تو ترافیکو نمیبینی ماشین جلوت فلاشر میزنه چیکار میکنی؟ صری فلاشر میزنی میگه لاواد یه چیزی میدونه اعتماد داریم به طرف جلویی میگه علی اینجا پاشه گذاشته لاواد روی این ذرات هستی روی این کره زمین روی این خاک زیر پای ما اینجا باید پاقر اینجا باشه لاواد ایراد داره نمیشه این, این میشه شیه خب اونایی که ته دلشون چی بودن آها پس اونایی که خوب بودن باز میشن دو دسته اونجا بله خوب گفتن اینجا بله رو در عمل اجرا میکنن رانندگی خوب رانندگیشون رو درست میکنن برعکس میگن راهنماییو بگید رانندگی اول راه میکنن اما نمی خیره تو بگیرن هی فرصت بهت میدن بعضی اونجا نگفتن ته دلشون بلر که الانی گفتن ته دلشون. نگفتن و با بغت بودن میان این دونه این هم چند دلست. تو این دنیا هم مسیر قلطشون رو میره میشه مسیر بعد رانندگی برد تو این دنیا میگن نه ما اشتباه کرد اینا برحق بودن این همه مسیحی که مسلمه میشه ها درسته؟ اینام این میشن. یه همچنین دستبندی حالا بالاخره هر بحث هر مثال مناقشه درش هست دیگه مناقشه در مثال نکن خب این میشه شبه احیا گفتم شیعیانی که مسیر و عبودیت امیرالمؤمنین و اهل بیت مثل آدم زندگی کردن، درست زندگی کردن، این مسیر رو بد دارن روندیگی حضرت آقا مونسدق فرمود کون ولنا زینا ولاتکون ولنا شینا. کو مایه زینت ما مایی بشی، مایه آبرویزی ما نباشید. به انصاف. یه جوری بشید بیان شیعیه فلانی ها. نا یعنی این مسلمان‌ها همشون مثلا نعوذ بالله بلان گناه انجام ده این مسلمان احج. این جاها جایی که آدم رانندگی باید یاد بگیره این شبا جایی که قوانین رو یاد بگیره کیا رو نگاه کنه؟ اونایی که خیلی خوشگل پشت سر امامشون روندن مثل عباس مثل هور. هر رانندگیش خوب بود مسیر رو داشت اشتباه میرفت عبا عبدالله بشکر این وقت قلطه این طرفی باید برید مثل زهیر نه؟ زهیر عثمانی بود علوی نبود. کسایی که می حضرت علی قاتل عثمان بوده، بهشون گفتن عثمانی. تو دستبندی سیاسی، جنابندی سیاسی اون زمان. مسیر اشتباه تشخیص بود. اما آدمی بود، ببین، رانندگیش خوب بود یعنی چی؟ یعنی قبول لاش که باید اصول رایت کرد. باید بهش برسی. توی اون کسایی که روز عالم زره. پذیرفتن کی به دنیا بیام میگن شاختر ایناشون کسایی بودن که گفتن آخر و زمان مخیر میدونیم. <تصفيق> قابل توجه چرا؟ چون شیرینیش درست بود. رسیدن به آن ملک عظیم. در عوض ارتفاع بالا سقوطش هم بحشت نردبان این جهان ما و است آغابت این نردبان افتادن است هر که کو پل بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شکست منو و تو خودمون انتخاب کردید سرات مشخصه اون خط وسط خط دعوت کننده است مبشرا گارده کنار خیابون کنار جاده انزاردهنده است و نزیرا را میگه نری بری اینجوری میشه میگه بیای اینجوریه دو تا هم داره اون میشه دشمن شناسی این میشه دوست شناسی میشه تبررا یا تبری این میشه تولا یا تولی ببین همه چیش جور این مسیح چرا،, چرا رای فتونی همه مثال تو مثلا راه انتخاب کردی به خاطر اینکه خدا گفت سراد به کلمات قرآنی دقت کنید وقتی خدا یه مثلا چرا مثلا لامپ انتخاب کردی چرا مثلا چرا اینا تو خدا گفت؟ بعد خودش هم میگه آخر همه آیه میگه این مثال ها رو میزنم تا بفهمیده و خدا علی اینا نیازی نداره اینا برای شما دارم مثال میزنم بنی اسرائیل های ها اسمی برای این میگه مثال دارم میزنم و یعنی بفهمید سر شما میاد ما پذیرفتیم الحمدلله الازی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین. المومنین یعنی الحمدلله جز اونه که هدف و شناختیم راه و شناختیم. می باید خودم بریم. منطقه اینجا از اینجا به بعد باید درست کنیم خودمونو بریم تو اون مسیری که درست زندگی کنیم علیوار زندگی کنیم حسین ابن علی آموخته حیحات من نسل زیر بار ظلم نرو ارتابلوی رو نپیچ تو جاده خطر هست بعضی ها علکه در میارن تو جاده که آی ما نیاز منیم تو رو خدا نگهده در راه مانده ای خطرات جاده همین رو گفتن. ما باید یاد بگیریم که درست رانندگی کنیم فلزا محرم ام با محرم سال دیگه چی میشه؟ فرق داره هر سال قرار رانندگی ما کنیم؟ بهتر اینه کی رانندگی کنیم؟ اونی که نمرش بیسته اونی که نمرش بیسته اگر بخوایم، اگر بخوایم بدون چیز بدون ابتلا بدون سختی برسیم به هدف چی؟ سنه یه هلیکپتری بیاد ما ببره بذاره اونجا خدا در مورد حضرت آدم فعبود نمیشه عزیزم. حضرت آدم همین نیتو کرد دیگه. حضرت آدم میخوست. یه یعنی آشکی. مقل, مقل بره سری برسه. به خاطرم هم شیطون چی گفت به حضرت آدم؟ گفت تو تا وعده بشتاد حضرت آدم گفت باشی. بعدی قسم دروغم خورد نامرد شیطون. قاسم و اگه اون قسمه رو نمیخورد مطلقا حضرت آدم حرفش گوش نمیکرد. به خاطرم هم حضرت آدم گناه نکرده چون گناه زمانی که شما علم بر چیزی دارید شما ندونی مشروبه بخوره چی میشه گناه کردین نه نمیدونست دیگه حضرت آدم نمیدانست که در آنجا کسی انقدر پروست که قسم دروغ به لفظ جلاله خدا بخوره گفت خدا من نمیدونستم انقدر میتونه این دروغ میگه نمیدونستم اما چون پیغمبره گوشش رو میپیچونه من میگم تو دل امیرالمومن فرموده تو دلش یه چیزی پیش شیطون این چی بشی گفت: گفت ببین ردیف میکنم بناتون تو چی بشی؟ فرشته بشی و شجره خورد خ... تو بهش خالد بشی گفتیم کیا؟ رانندگی درست هدف درست مسیر درست كفت. بدون سختی ردیف میکنم چون بهش دیگه ازاد از آدم توش بود بهشت حقیقی نبود دیگه بهشت معود نبود یه جای خوش آب و هوای خوبی بود این آیه قرآن وقتش نیستن قبلا سخن کردم دلیلش گفتم همش قرآن یا روایی خیلی قشنگه یه چقدر پیشنهاد ابلیس احمقانه است نه چرا فرشته ها سجده کردن به حضرت آدم بعد میگه میخوای ردیف کنم بیاد فرشته بشه انگام مثلا طرف رفته دکترو گرفته بعد بگن ببین ردیف کنم برو از اول از سیکل شروع کن خونندم آدم که ال آدمه اسماع کله ها علمال انسانه مالم یعلم که علامه بوده که اصلا این خودیه مسابقه میذاره به فرشتام که شما خبرم بدید هیچگی نمیتونه دانش آموزا جواب بده تنه کسی جواب میده که حضرت آدم اینکه که علامه چرا همچه کلوی سرش بده جالب بدونه توی مفسرین من هرچی گیشتم هیچی هست نتونستین جواب حتی علامه تبا طب تبایی ایراد میگیره بر شیخ مرتض سید مرتضی، سید رضی و سید مرتضی ایراد میگیره برش چه بسا مراد اینه. ملک چه ویژگی داره؟ این که همیشه صد خودشه. درسته نه؟ همیشه از اون بهتر دیگه نمیتونه بشه. برای همین ما فرشته رو نماد چی میدونیم؟ پاکی و خوبی میدونیم. مثلا نمیتونه گناه بکنه وقتی میگه شما فرشته بشید اما آدمی یعنی چی؟ یعنی صد خودتون شید. صد آدم بودن میشه چی؟ شب اون چهاردهت تا شدن. برای همین ما روایت داریم. میگه حضرت آدم تمع کرد به ما. روایت داریم. اونجا بر برعکس چی خیلی جالبه. نزدیک میشه به چی؟ شجره. بازم صحبت درخت. این شجره داستان دارا. خدا با موسا از طریق چه صحبت کرد؟ شجره. از تو درخت صحبت کرد. آقا امیرالمومنین میفرما: می‌دونه حضرت یونس چرا این بلا سر شما؟ چرا؟ فهمون به بلو، ولایت من شک. گفت حلال محمد حلال الیوملقیامه و حرام محمد حرام الیوملقیامه. درسته؟ پس چیزی که بعد از محمد بیاد جدید نیست، من تو ولایت رسول الله رو قبول کنم بس. شکش بر این رفت. فظنن لنقدر علیه فنادف الظلمات. ظنش بر این رفت. رفت کجا بگید؟ فی زولو ما همه اول جلسه گفتم جایی که اینا نباشن یعنی ظلمات. به خاطر همون داد میزد سبحان که نیکنتو من از ظالمی اشتبا کرد فستجب ناله و نجیناه و نلغم و که داره که ننجل مومنی واسطه هدایت همه چینا بعد رسید خب سرتون در دووردم. من برای امشب کافی میدونم امیدوارم که مفید بوده باشه تعجیل در فراج قطب آلمان کن حضرت صاحب از زمان صلاوتی نبی فهم